بسم الله احلاف المنزلین بنامه خدای ناگل کنندی معرفت صبح امشب رو میخواییم برگردنیم به اساسی ترین و ذاتی ترین موضوع معرفت بشری و اون خود معرفت بشری است اومش میخوام در مورد خود معرفت معنای معرفت از معرفت و ذات معرفت میخوام صحبت کنم از دیدگاه منطقه فلسفی در واقع میخوام بحث شناخت شناسی داشته باشیم یا بحث قول معروف اپیستمولوژیک داشته باشی که اصلا خود معرفت چیست این بحث در فرهنگ اسلامی و عرفانی نیز مثل همه مسائلی که دیدی بسیار بهندرت ترح شده خیلی کم در تاریخ جدید که اصلا تره نشده قدیمترها هم اینقدر اساسی تره نکردن خود سوژی معرفت رو ببانه موضوع معرفت نه این معرفت شماسی خب نباقه سوال اینه که خود این واژه کار چیه معنای باحتینی این واژه چیه واژه معرفت که از عرفه است عرفانم از عرفت الله از لغت عرفاتم از محرفت هایا نظر این در فرهنگ لغت در فرهنگ گویشی من معاصر ما آیا معرفت همان شناخته به نظر که شناخت و معرفت و فهم و شعور و علم و دانش و ادراک و همه هم. این به نظر میسته اینگار با جایی در هم طور نیسته. اصلا ترادف در قدم رو به ادب و فکر بنظر من چیزی سلطه هرگز دو واژه مترادف به منایی که بگیم این همان است وجود نداره این حاصل قفصد و جهل بشه حاصل این راحت تربیه تصاحل فکریست همون دویگه به مسئله ما از هم رو فکر میکنیم باقا دین و مذهب و اسلام و ایمان و اینا همه اینا یکی مترادف هم دیگه است این ها اصلاً این اگر ما نمیتونیم بگیم که مثلا سیب و حلو و به مترادفند بس نمیتونیم بگیم معرفت و شناخت و فهم و ادراک مترادفندی و در خلقت بربردگار همون دو که دو شیء تکراری وجود نداره دو واژه و کلمه تکراریم وجود نداره این ترادف به معنای این همانی واجه ها و اشیاء غلطه این همانی یک مسئله است که یکی از محصولات فلسفه یونانی بوده که از توش تصاویگری در اومده تصاویگری در روی فرهنگ به نیهیزم و عبس انجام میده در قدم رو به معارف و علوم هم به گمراهی انجام میده معرفت رو از یه لاز میشه گفت بله نو و درجه ای از فهم شناخت و تشخیصه اونتا چه نوعی ای از تشخیص چه نوعی از ادراک مثلا ببینید در هم گویشه آمیانه وقتی ما میگیم میخوایم یکی رو معرفی کنیم معرفی نمد عرف است در واقع ما میخوایم ویژگی منحسر به فرد و بی همتای اون کس رو بشناسیم و بیا بشناسونیم مفهوم اینه بنابراین ولی واضح تا اینجا میشه گفتش که معرفت یعنی شناخت بیتایی چیزها شناخت بیتایی یعنی شناخت یگانگی چیزها این یگانیگی و بیتایی یعنی شناخت موجودیت چیزها چرا؟ برای اینکه هر چیزی که در جهان هست و وجود داره یک چیزیست بیتا و منحصر بفرد چون چینینه اصلا هست ببینید حتی بر روی یک درخت که میلیون ها برگ وجود داره حتی دوتا برگ هم از یک شاخه و از یک درخت ها صورت یه جور پس در واقع میشه گفت که در عالم هستی تکرار مطلقا محاله تکرار این عبسه و در کار خدا عبس وجود نداره پس هر چیزی چون بیتا هست اصلا هست پس وجود داشتن یعنی اهدیت یکتایی و بیتایی پس معرفت مربوط به شناخت بیتایی و یکتایی چیزهاست بیتایی و یکتایی چیزها هم در اینا یعنی موجودیت چیزها وجود چیزها نه تشابهات در واقع وقتی ما میخوام بیم، این چیز رو میخوایم معرفی کنیم در, در اول با تشابهات آن چیز رو با چیزهایی که شبیه اون چیز هستند رو ما میخوایم پاک کنیم تا ببینید خودی اون چیز به خودی خود به عنوان چیزی منحصر به فرد چیست خب ما میدونیم که در فرهنگ دینی همچنین در فرهنگ قرآنی آن یگانه، آن اهد و آن زم یکن لهو کففان اهد یعنی آن بیتا خود خداست بر همین این سوره سوره توحید اسمشه یا تو سوره اخلاص. بس در حقیقت وقتی ما میخواییم بی همتایی یک چیزی رو بشناسیم یعنی وجود یک چیزی رو بشناسیم در واقع میخواییم خدای آن چیز رو بشناسیم یعنی خدا رو در آن چیز بشناسیم این شناخت حلیقی آن چیز هست این شناخته وجودی آن چیز هست یه پس معرفت خود بخود دیدونی که در این حال چیز شناسی، وجود شناسی، و در این حال یعنی همون خدا شناسی. تا اینجا کاملا ملوست بسده خب ما و معاد معرفت خود انسان این واضحه عارف و معروف خود انسان فرانه که این کسی که میخواد بشناسه خود انسانی میخواد بشناسه بنابراین واضحه که خود اون کسی که میخواد بشناسه شناس خواسته کنه معرفت به دست بیاره نزدیکترین چیز به انسان خود انسانه نزدیکترین شیب من خود منم دیگه درسته ما همه دورتر از منم بنابراین من ملمسترین و محسوس موجود عالم برای من خود منم یعنی در دسترسترین موجود برای من خود وجود منه. پس طبیعی منطقی هم که یک اینکه پس انسان خودش رو بهتر از هر چیز دیگری میتونه بشناسه برای اینکه وجود خودش رو با پوست و گوشت و خون و اعصاب و احساس و اندیشه و فعالیت های خودش شبانیوز داره تجربه میکنه و معرفت حاصل تجربه است دیگه خب. پس خود انسان برای معرفت بیش از هر چیزی به خودش نزدیکه اینجا سو باید بستره معرفت نفسی برای معرفت نفس محوترین معموسترین و ممکنترین و یک معرفت‌ها معرفت ها هست. دو واجبترین معرفت ها هم هست از مرفت ها هم هست. انسان خودش عنوان یک یا مهم ترین سوژه مرفته بایستی باشه. در بیان دیگر آن کسی که میخواد مثلا این شی رو خود کار رو بشناسه خب. اگر خودش رو نشناسه چطور میتونه خود رو بشناسه؟ خب، من چگونه او خود کار رو میشناسم؟ لمس میکنم با پوست خودم با چشم خودم میبینم با اعصاب خودم سفتیزه، برید، نرمی، رنگ ها اینها رو و نهایتا با ذهن خودم موجودیت این رو درک میکنم پس من بایستی بدونم خود این ابزارهای ادراک کننده و تشخیص دهنده هوشوهواس و اندیشه من قوه, قوه تشخیص در انسان خود این چیه پس برای شناخت حژری و ذاتی این خودکار من مجبورم که خودم رو بشناسم به میزانی رو میشناستم من میتونم خودکار رو بشناستم و هر چیز دیگری رو بشناستم برای همین حضرتزی میفرماد که کسی خود را شناخت همین چیز را شناخت کسی خود را هیچ چیز را نشناخت انسان به میزانی خودش رو میشناسه در واقع شناختی محسوس و یقینی در مورد چیزهای دیگرم داره و خودشناسی خب باز ما دیدیم خودشناسی جهانشناسی شناختی اشیا و خداشناسی بازیدیم اتوماتیک یک مرکول هست و از هم جدا شدنی نیست خب بنابراین من اگر برای هم نمیدیم که ساعتم مستقیم خداشناسی و محسوس ترین و یقینی ترین خداشناسی در خودشناسی حاصل میشه در اسلامی و دریایی از سخنان از بیانبار امه و ما مثلا دستور شده خوب در واقع من وقتی خودم بشناسم خودم رو به عنوان یک موجود منحصر به فرق، که با هیچ انسانی دیگری و با هیچ چیزی دیگری ترین شباهتی ندارم، اون بی خودم را بشناسم من خودم رو شناختم. خب یعنی این و اهدیت و یگانگی خودم را بشناسم خودم رو شناختم. خب گفتیم که اون اهد و اون سمت و اون بیهم تا خود خداست. باز این طریق. خودشناسی طبیعیه که به خدا شناسی برسه و این همون وجود شناسیه با این بس توضیح داریم که وجود شناسی خودش به خدا شناسی میرسی و این سرواسترین و محسوسترین ترین راه شناخت جهان پس شناخت خودم همچنین شناخت خودم خب این کاملا حسیه منوسته من اگر خودم رو نتونم بشناسم چه تو میتونم خودگاه رو بشناسم خودم که خودم هم نمیتونم بشناستم خودم رو به هم میزن خودکارم نمیتونم بشناستم و حضرت خدا رو هم خوب واضحی نمیتونم جنبه دیگر این مسئله برمیگرده به این موضوع که اصلا خود انسان چیست خب ما میدونیم همه لازی معرفت دیمی در داستان خلقت انسان در کتاب آفرینش در کتاب مقدس این واضح شده که انسان آخرین مخلوق آدم هستیست یعنی چیز خلق شد، آخر آخر انسان خلق شد انسان موجود آخر یعنی انسان از هر موجود دیگری نسبت به مبدع خلقت خودش بیشتر فاصله داره این در دوسترین حد از مبدع قرار داره در دوسترین حد از خالق خودش قرار داره یعنی زمانی علال نظریات علمی فصفای علمی و تکامل در قالب روی دانش هم از جمله فرض کنده نظری داروین این هم مسلم شده، این نظریه خود راستن خلقت انسان رودار مذهب هم ثابت کرده از این لحاظ که انسان آخای مخلوقه، ولی کاملترین کامل ترین و پیشرفته ترین مخلوقه. انسان معلول ترین معلول هاست. دروغ. دروغه انسان در واقع یاد میشه گفتش که کم عمر ترین و کم سن ترین موجود اعلام استی. هر موجودی مسنتر از انسانی. انسان در المسیح یک بچه است یک نوزاد و در دورترین حد دست خدا برادر عن هر شیی به خدا نزدیکتر ن از طرف دیگر باز الله ز معرف دینی که چون خداوند انسان رو از طریق دمیدن روح خودش در انسان انسان رو خلیفه خودش کرده از این لحاظ میشه گفت درست منایی اکسشم وجود داره انسان پس اللازه ظاهری و زمانی بیرونی دورترین موجود از مبدعه خداونده و کودکترین مخلوقه بگه محتوا، اللاز محتوى اللازه باطنی درست برعکس نزدیکترین موجود به مبدعه و به خداست برای اینکه صاحب روح خداست و لذا پیرترینه همونطور که خدا هم پیرترین موجوده قدیمترینه عمرش بنایته. علاوه در این حال، عمر انسان بنایته برای حامل روح خلاص. خب این یه تناقضیه، یه دیالکتیک معرفتی است. باز واقی میشه گفت انسان از این لحاظ گفتیم که آخر جهان از این لحاظ میشه گفتش که اول جهانه چون اول جهان ازل ازلی خداست و روح خدا در انسان هست، پس انسان اول و آخر جهانه خب که اول و آخر از اسمای خداست در قرآن و اول و آخر ولی اینجا این اسم انسان هم این مفهوم هم خودسنات خدایش ناسیست این همه که جان ذات خود خداست و انسان اول و آخر جهانه من این ظاهر باطنه جهان خب این خودش یک دیالیفتی و این تناقض منطقی و تضاد بسیار ذاتی و عظیم به نظر میه. <تصفيق> در جنبه دیگری ما با تناقض و تضادی اساسیت رو باز می ببینیم خب خدا بر حسب ظاهر و بر حسب محسوساتی بشری به نظر می که وجود نداره به نظر می که آن چیزی رو که انسان ادم می نامه همون اسم واقعی خدا همون همان همون است در تعریف دینی و قرآنی و در تعاریفی که علیه علی اسلام در مورد ترهید ارایه فرمونده ما میدونیم که شناخت خدا از طریق صفات شرک و این خداعشناسی نیست کمرا کنند است از طریق صفات یعنی چی؟ از طریق محسوسات تعیینات رسته؟ خب بنابراین اگر از طریق صفات نمیشه خداعشناق یعنی از طریق محسوسات و انگیشه هستی نمیشه خدا رو شناخت پس عزیز با منظر میسی که خدا هستن اما شناخت میسی چون شناخت انسان همون محسوساتی دیگه ما و عرکان شناخت و شغور انسان همین حواس پندگانه که مادیات رو درمسی میکنن جهان ماده و تعیینات رو درک میکنن خب. از این ددگاه بهتر میشونم امید که پس از این ددگاه از منشای شغور و شناخت بشری، خدا مترادف با عدم و نابودی است خدایی که خود حدود از است و خالق موجوداته خودش نظر می که نیست از چشم محسوساتی بشری و شناخت و شعور بشری نیست برای همینه که شناخت خدا الله زین امکان نیست چون تمام محسوسات در ذهن که درک میشه نهایتاً تشخیص داده میشه که این خودکار است. برام نگیم خود شناختی خدا فقط از طریق دل امکان پذیره. برام نگفتم میشه که دل خانه خداست. دل منزله خداست. ها؟ شناخت قلبی شناخت روحی شناخت اشراقی عرفانی و الهی مختلفه. یعنی در اینجا نمیشه خدا را شناخت. در اینجا آنچه که ذهن انسان شناخت ذهنی از خدا متلافی با ادعای قرار همینه انسان در تلاشش برای شناخت خدا از طریق ذهن که همون شناخت محسوسات هست شناخت حسی هست انسان فقط به این اینکه خدا رو بشناسه نه اینکه بدونه هیچ که خدا وجود نداره و امکان نداره که اصلا وجود داشته باشه و بتونه وجود داشته باشه بقولی با خدا مقدس‌تر از اونیه که اصلا وجود داشته باشه همون داره که خردگرایی ذهنی و حسی غربی ناگهان در قرن و بیستم در قایت خردگرایی و انتلیکچالیزم در انگیش مثل مارکس نایتن و نیچه و ایلزیستانسیالیزم ماسر که کمال و ترمینال فلسفه و خردگرایی بود خدا اصلا محو شد رفت الانن محف شد خوب تبیل بودی وست این چون خدا از طریق ذهن قابل شناخت نیست. سن که ما می برای ذهن همون خداست خدا همون عدم میشه برای همین قایت کمال شناخته هستی که در ذهن انجام میشه هم به عدمه برای همین قایت خردگرایی فلسفی هستگرا و خردگرا و زنگرا خرد و هم به نهیلیزم خط شد نهیل یعنی, یعنی نابودی نیستی مکتر نصادتی نیستی شد نیستگرا نیست نیست انگار شد. نیچه یکی از معروف‌ترین شه. هایدگر همینطوره، سار همینطوره. با همینه اون قضیه هم که خواستند دو مرتبه به مذهب برگردن مثل یاسپرس، مثل گابریل مارسل، مثل پالتلیخ تیلیخ مجبور شدن که خط بطلان بر شناخته ذهنی بکشند و متوسل بشن به معنا وفدیدهی به نام ترانسیدانس حلصفی ترانسیدانس در واقع میشه گفت مترادف با ادراک اشراقی شهودی و قلبیست شناختی دگر کم ما تو خود قرآن هم خود قرآن از یه داست کتاب دلشناسیست تمام ارزش ها از دل یا به دل ختم میشه کفر ایمان از دل عقل و جهد از دل حکمت و علم از دل قفلت و حضور از دل شعور از دل همه چیز از دل اینها هستش اعتبارات دینی اون عقل و شعور ادراهی از دل باشه الهیست خداییست و بر حق و گمراه کننده نیست آنچه از ذهنه همش گمراه کننده است چرا برای اینکه ذهن خدا را یعنی وجود مطلق و ازلی رو و خالق موجودات رو ذهن عدم میابه یعنی وجود رو ازن میابه خب ببین این اشد تضاد ده, ده. خب پس همه موضوعات و مسائل ادراک ذهنی هم دیالیفتیکیست تضادگراست و ابطال شونده است به بیان دیگر هر چیزی رو که ذهن خوب میدانه در واقع بده هر چیزی رو که برحق میپنداره در واقع ناحق هر چیزی رو که درست مفید میدونه اتفاقا نادرست و مزهره تمام راه های ذهنی در واقع چاه ها هست. در حقیقت ذهن کارخانه تولید اردش های برای همینه دین ذهنی هم اگر همسان بخواد ذهنی بمونه قلبی نشه به نفاق که کفر دوبلست دست میان نفاق این کفر دو, دو طبقه کفر به دو بقید مرد اون که اصلا دو دین نباشه یه کافر جاهله یک آفر غریزی ولی انسان از طریق ذهن بخواد دین رو خدا رو خداشناسی رو دینداری رو مسائل دینی رو درک کنه و پیروی از ذهن خودش بکنه انسان به کفری برتر و دوبله که همون نفاقه میشه برای همینه مذهب ذهنی به خودی خود مذهب نفاق آب در اومده میشه برای همینه که مذهب در قدم روی فلسفه که کارخانه ذهنگرایی و ذهنپرستی بوده دیر یا زود به کفر رسیده بالاخره علاوه رو شده خدا رو ممکن شده علاج جزئی نبوده خب از داد میشه گفتش که این یک ذهن شناسی بود وقتی میگیم خود شناسی خب خود شناسی این خب ما که آقا جو ما چطور میفهمیم یعنی فهم شناسی خب نخستین فهمی که قابل بحثی برای عامه بشر قابل تجربه هست فهم ذنی، ذهنی که همان ذهن کارگاه درک محسوسات و معلومات و تعینات و مادیات مادیات رو در ذهن تبدیل به ایده میشه این ایده معنویات اسمش بذاریم غلطه ایدهال ها هستند ایدهال ها همون مادده ها هستند که تبدیل به ایدهها شدند شدند ماده در ذهن تبدیل به جهان ایده ها مصول ها و قول و ایدهال میشه برای تصرف جهان بنابراین اولین ذهن ذاتا جهانخواره حریص بلنداست اراده به قدرت که می‌بینیم اراده به تصرف و تباهی و جهانخاری کارخانه ذهن انسان ذهن انسان غیر از این نمیتونه باشه الا آن ذهنی که صاحبش دارای ایمان قلبی معرفت قلبی شعور قلبی و اضاک قلبی شده باشه در چنین انسانی البته یعنی هم ماهیت عوظ میشه و این ذهنیت که تماما ادراک دنیوی مادی هست در خدمت دل قرار میگیره و چنین ذهنی دیگه بیانگر علم حقیقی و حکمت میشه دیگه در غیر انسان ذهن فقط ایدعال پرداز آرمانباه و آرزو پرسته و جز تصاحب جهان و بلیدن جهان و بر جهان جز اقتلالگراهی هیچ منعی ذاتاً نمیتونه داشته باشه مطلبا نمیتونه داشته باشه ولی همینه فقط قلبی که مؤمنه و معرفت قلبی داره اون زن هم میتونه تعقل داشته باشه و واقعا خرد به معنای واقعی داشته باشه و تشخیص حقبیلانه داشته باشه قلبی که نور ایمان نداره اون قلبی که خدا درش دهت نمیشه در درجات ذهنم نعل بارون است پوستین بارون است هر راهی که جلوی بهش میذاره به یک چاه منتهی میشه تمام راههای ذهنی و پیروی از ذهن به چاهها به ها به, ابتال ها, به ناکامی ها و به شکستها میانجامه و این اجتنام ناپذیره و همینه خداوند در قرآن میفرماد که برای رسیدن به حق زن کفایت نمیکنه زن همان ذهنه زنگرایی که فاید نمی کنیم باز می فرماد که کافران خدا را از طریق زن می که همان هوای نفسشونه این خدا نیست اونا هوای نفس،, هوای نفس و خیالات خودشون رو می فرستن و اسمش رو فکر کردن خدا پرستن بنابراین زن که میگیم دیم از هردین می که توحید پاکتدنی از زن نست نه سوی زن یا حسن زن نه زن ذهنیت حسن قبهش خوبدش مایت یکی تمام ارزشهای ذهنی دییالکتیکی است تناقذآفرینه خوب بس زشت زیبا باید نباید برای همینه کسی که ذهنیت خودش رو فقط صرفن داره دنبال میکنه و تویت میکنه این در قدم رو استهلاک و خستگی میره در این تناقضات بین دو تا سنگ آسیاب داره له میشه در واقع خستگی که میگیم کارخانه خستگی اینجاست استهلاق و شکست و ناکامی درک در که توحید در قلب ممکنه توحید میگی فقط خدا نیست نه خیر یعنی شناخته واقعی هر چیزی معرفت بر وجود هر چیزی طریق از الهی قلبی ممکن ذهن انسان هر چیزی رو دو شقه میکنه. دو تیکه میکنه. بنابراین ذهن انسان هرگز به وجود یگانه یک چیز نمیتونه برسه. یعنی ذهن هرگز نمیتونه وجود فهم باشه و وجود رو درک کنه. ذهن کارش هنرش ليش دوگانگی و دوگانه هست هر چیزی برای ذهن یا خوب یا بد نسبتش خوب یا صورتش بده زشت زیباست باید نباید مفید حق نه حق و الی آخر ببین پس این موضوعی نیست تمامی از اشی دوگانه در واقع زنیات شکیات و حدسیات ذهن هستند اینها ها ادراک خرد نیستند خرد ذاتش برای یقینه ذهن کارخانه زنه یعنی شک تردید یعنی همش تردید وجود داره تردده ذهن جهان رو دو میکنه و بعد بین این دو, دو شبقه مرتب در تردیده کابی این ور به این ورکایی بر. به برای بر همینه همش کارش افراط و تفریطه ذهن انسان ببین این انسان حتی معنای خدا رو هم دو میکنه خدای مهربان خدای قذبناک خدای خوب خدای بدی این یه خدای خدایی یعنی از طریق زن خدا هرگز یوانی درک نمیشه دو تاست خدای زن همیشه دو تاست پس از, از ذهن درآمده مذهب ذهنی هم مذهب شرکت در قرآن آمده این آیه نسل سری وجود داره مشرکان خدا را به واسطه زن نشان میکند و این خدا نیست، هوای نفس آنهاست و شرک ظلم عظیمی است و مأصیتی بر خدا است که خدا مینامند اون خدا نیستش که این هوای نفس خب پس معلوم شد که انسان ترمینال و بارانداز کل عالم هستی و کل تاریخ عالم وجوده. انسان واقعا وارث آدمه. آدم وارث آدم هست. بلا ولی کل کائنات و هر آنچه که درست شبان روز داره در انسان سرگیز میشه یه خداونی فرماهد که کلیه جهان را آفریدم و مسخر وجود انسان که به این منعه چون شبان روز داره بر انسان وارد میشه لازه انسان میتونه جهان رو ببینه و لمس کنه و به درجات مختلف در و درک کنه ببینه که جهانی از داره در واقع جهان هستی از این دیدگاه میشه بهتر درک بذارن که این کلام در مذهب و در دین و رسحان اسلامی کاملا عین واقعیت محسوسه که کل کائنات برای انسان خلق شده، ولی نه خلق نمیشه. در حدیث قدسی داریم که چون زالمم چون دوست داشتم که خودم رو معرفی کنم جهان رو بافاییدم و انسان رو مختص این کار کردم. اگر نه اصلا جهان رو پس کل عالم هستی تماما انسان نیست این ایدالیز نیست تا کاملا متوفده ما تماما جهن می صبت تا که ما مخالف ایدالیزم هستیم ایدالیزم یک دروغ جنون بشاره ایدادی رو در قلب روی فلسفه چه در دانش چه مساف، در مصحف, مصحف زده مصحف رو بدید میاره در فلسفه حکمت زده حکمت رو بدید میاره در دانش هم جهنم میروه میاره که اسمش رو بهش تکنولوژی گذاشتن بهش دیرو در واقع دانش فندی از طریق ایدادهای ذهنی و ادراکی ذهنی بدید بیاره تا واقع بهشت رو نخ کنه ولی همه جهنم اصابتر آمد به عکس خودش میرسه رسه ذهن از در انسان از یه داز فقط یه رسادت داره تا انسان رو در جهان ناکام کنه قدم روی کام دل قدم روی ناکامی ذهن خب در واقع کل آدم هستی که برافایم رو گفتم گفتند خود از علی ای که انسان جهان اصقره و جهان انسان اکبره خب این واضحه که مثلا این کارات و کهکشانها و این جهان طبیعت اینها که در من نیست در من اینقدر جا نمیگیره این و در این حال بقول ما موسادق علیه در همین مردم که چشم که بنداز ای عدسه کل ها توش جا میگیره. اون قابل تعمل بس در حقیقت انسان گوهره عالم آدم هستی رو در خودش جا میگیره می نور آدم هستی رو میگیره گساره و لب آدم هستی و آدم وجود رو میگیره اینکه مولانا میفرماد چرخ در گردش اسیر هوشماست ماست دین واقعیت. چون جهان جهان انسانی است، تماما جهان تماما انسان است و فقط برای انسان است این جهانی که ما باشید رو برستیم و مثلا حیوانات نباتات جهانی که جهانی رو دریافت نمی کنن هم جهانی خواست خودشون دارن ولی مطلقا رفتی به جهان انسان نداره خب ما در باز حدیث قدسی داریم که چه هنر استی اول نور بود، که نورم که دیپلمان دیگر است. اللهو نور است، سمواست و از. پس کل هنر مسی از نور است، بر نور است و در نور است. پس نور همان اسرع الله نفر فرید. برای همینم وقتی ما از معرفت صحبت میکنیم در قرآن در معارف دین ایمان از نور معرفت عقلم نور عقل ایمان نور ایمان یقین نور یقین شعور نور نور دین ببینید همه اینا نور علم نور اینها کلمات شاعران نیستن عین واقعیت حتی دانش فیزیک مدرن هم این مسلم شده مخصوصا در نظری انشتن در در فرمور معروول بشه. کمی چیز از نور است و به نور مانطی میشه مبت و آدم استی نور است. اگرچه این نور فیزیک یک نور سگیز و ظلمانی است نور خدا این نور فیزیک نیست نور خورشید خدا نیست در این شکلی نیست. این سقلل ترین و اسلی ترین نوره. نور نور نور بنابراین اگر خداوند انسان رو و جهان رو برای این آفریده که خودش معرفی کنه خودش نور بوده و نور هست اینکه کل کل جهانیستی در انسان هست یعنی نور جهانیستی در انسان هست اون نور با وسط معرفت نفس یافته میشه هست به دست میاد نقد میشه حی حاضر میشه برای همین معرفت نفس که میگیم ابتدایی ترین و مقدماتی ترین و چرکینی ترین گامش معرفت ذهنی نیست برای همین حکمت و مفهوم نیوه های معرفت نفس ربطی به فلسفه نداره قاید و کمال فلسفه دialeکتی، یعنی ذهن، یعنی تظاهر پرستی، تظاهر پرستی، این یعنی نابودی پرستی، کلام روی تضاد دialeکتی، تا امانت روی و تباهیست، است سری معنایی که ذهن میتونه درک کنه در کلام روی و اونم انسان رو عدم و وام نام انسان وجود رو آدم و آدم رو وجود می‌آورد. ببین با ذهن انسان واژگون سالاره. برای همین که رسالت ذهن ناکامی هستند در خانه این هر طور ما ولی این مقدمه است برای اینکه معرفت که معرفت نوری و قلبی هست رو درک کنیم در واقع معرفت تجدیدی معرفت قلبی است و اون معرفت نوری است معرفت ذهنی معرفت ظلمانی است نور و ظلمت در واقع در وجود انسان کارگاه و منشایش ذهن و دل هستند اینجا منشای نور اینجا منشای ظلمته ظلمت یعنی قدم روی تاریکی ها اوهام انسان در تاریکی وقتی قرار در شب همان هیچ نمی بینه. فقط خود این تاریکی تبدیل به اشباه و سور و اوهام میشند و انسان فرد میکنه که اینا واقعیفه هستند نوبرین دانش و معرفت ذهنی ادراک ذهنی تماما است اشباهیست ظلمانیست و لذا فریبنده است. وقتی نور آفتاب تو کرد تمام ماه هم نیستند نیست و تازه انسان واقعیت رو میبنه. واقعیت همین جهان از طریق معرفت قلبی و نوری دیده میشه همین واقعیت همین جهان و این گونه است که به قول ارزدالی انسان در هر چی که میبینه جو خدا نمیبینه اگه هر چیزی هر شیعی نشانه ای از احدیت وجود خداست بی وجود خداست آیت در قرآن هر شیعه یه بقیه است آیت نشانه از خداست خدا چیست؟ احد، سمد، و بیتاست برای این خودشناسی و خداشناسی و شناسی، امر واحدی است که هر فردی و تمام شباهتی که با دیگران داره خودش میدانه که منحصر به این محصر بفت با بودن را درک نمودان بکنه درک یگانگی و بیتایی وجود وجود خود همان خدا هست خودشناسی و این شکلی به دست میاد. از طریق گام به گام کاهش منطقی و حذف تشابهات تشابهات قدم روی فریب ها هستند قیاس قدم روی فریب ها و اوهام هستند ببینید کل فلسفه که از غرب برخواسته فلسفه دربی که پدرش و پیغمبرش عرستویه منطق عرستوی خودش میگه منطق قیاسه قیاس یعنی تشبیح قیاس یعنی تشبیح برای همینه که خود الفان اسلامی مولانا خودش میفرماد اول کسی که قیاس کرد ایبلیس پس و ذهن انسان جز قیاس هیچ کار دیگه نمیتونه میکنه ادراک زهنی تماما یعنی ابلیسیست برای همینی که فریبنده هم است ابلیس خونه هرش که انسان رو بخاری به انسان آداریس به رشت میره می وقتی میرسه میده جهنم شد در حقیقت آن نفسی که طبقه اول نفس یعنی خود همون ذهنه گردد این فرماد که من به میزان که بر علیه خودم حدکت کردم به خدا رسیدم یعنی بر علیه ادراک ذهنی خودم برده ی زند خودم طبقه عزیز یاد میشه گفتش که ذهن همون نفس اماره است نفس اماره و آدم خور و جهان خور و سلطگر و ظالم و بلنده و تباه کننده بناباری عزیز الاد میشه گفتش که ما بایستی نفس اماره فعالترین و روحترین و دنیاویترین طبقه نفسه پس ما حتما بایستی از طریق شناخت ذهن خودمون نخستین گام و مهمترین و اساسیترین درزوی خوشناسی خداگاهی ذهنی است کمال فلسفه اروپا که تماما ایدعالپرستی است و ذهنگرای و زنگرایی است و تماما تناقزپرستی است در فلسفه هگل و عاش و قایت خودش رسید و تبدیل به مذهب شد و از به این طرف فقط نهیلیزمی که در فضل دفعه